خوزان عزیز سروران گرامی این فضل و احسان الله زلجلال هست که توفیق و حضور در خانه خودش نصیب من و شما کرد و در این روز مبارک که روز برتر هفته هست و سید الایامه و بالاترین روز در هفته روز جمعه هست. بسیار با مبارکت از این روز که الله زر جلال به قول پیامبرش پیامبر اکرمی فرماید روز جمعه برترین روز هفته هست و در این روز ساعتی است که اجابت دعا می شود و شما این روز را دریابید. و این روز را گرامی بدارید، ساعتش را، لحظاتش را پاس بدارید و به دعا و ذکر مشغول بشوید که در این روز ساعتی هست که الله زلزلال در این ساعت دعای شما را اجابت میکنه و غالبا گفتن این زمان هم به هر حال از بین نماز عصر جمعه تا غروب جمعه هست به خاطر همین هم روش علما و سلف همین بوده که عصر جمعه را که نمازش را می خانند می نماز مغرب و دعا و ذکر و تلاوت قرآن مشغول می شوند الله زلجلال توفیقه در یافتن ای این زمان را به من و شما انایت می فرماید الله را بر تمامی نعمتها شکر می گوییم و با نام الله هم آغاز می کنیم صحبت و سخن را و درود بی پایان در پیامبر مهربانش رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یاران باوفایش مهاجرین و انصار خلافای راشدین اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و همه بندگان نیکش زمان بسیار کم هست و امروز مختصری در باب شان و شخصیت عالم برجسته و زمانمان زمان من که در یکی دو روز گذشته ایشان را ما از دست دادیم و در واقع یکی از پایه و خیمه‌ها خیمه دین من را به نوع ما از دست دادیم یک غمخار امت یک دعاگو را ما از دست دادیم یک پدر درشوز یک پدر مهربان یک پدر خیرخواه و مصلح امت که سراسر زندگی پربار ایشان برای خدمت به دین خدا صرف شد برای اصلاح و تذکیه امت و مردم صرف شد عمر مبارکشان و الله جلال در چند روز گذشته را به دیدار خودشان احضار کردند و ایشان را از غم و بسه دنیا رهانیدن و او را به جوار رحمت خودشان فرا و ایشان نیز شخصیت جز حضرت شیخ الحدیث مولانا سید محمد یوسف حسین پور همه بگید رحمت الله علیه رحمة واسع الله عزوجلال رحمت های وسیعش را و رحمت های بیحد و حسرش را بر این عالم وارسته و برجسته و متقی و پریزگار زمان ما الله حضرت جلال رحمتهایش را نازل بفرماید و بر جمیع خیرخواهان این امت که از دنیا رفتند همه علمای من شما همه خیرخواهان دلشوزان این امت از دنیا رفتند زیر خاکند الله حضرت جلال بر قبورشان رحمتهای خاصش را نازل بفرماید در باب شخصیت ایشان زندگی ایشان که زندگی سراسر تعلیم بود برای همه ما یک درس بزرگی بود یک آموزش بسیار بزرگ و عظیم برای کسانی که جویندگان راه ایشانن یک تابلو تمام است. اگر کسی بخواهد زندگی عزتمندانه داشته باشد زندگی که از آن زندگی دیگران مشق بگیرن، الگو بگیرن زندگی مولانا بسیار زندگی الگو برداری برای ما هست گمان نمیکنم کسی ایشان را دیده باشه و تحت تأثیر شخصیت ایشان قرار نگرفته باشه به ندرت کم پیدا می شود عرض کردم تا جایی که دوستانی با ما صحبت می و ما با اونها تعلقی داریم صحبتی که میکنیم و صحبتی که قبلا هم داشتیم سبحان الله از مقام بزرگ این عالم چقدر یاد میشه تجلیل میشه و الله جل چقدر این بنده را دوست میداش اون حدیث شریف پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبر اکرامی فرماید که الله جلال وقتی بنده ای را دوست بداره با او محبت بکنه جبری را احظار میکنه جبری من با فلان بندهم فلان امن فلان, فلان فلانی فرزند فلان ام من با او محبت دارم او را دوست دارم او از دوستان منه او از مقربان منه من او را دوست میدارم ای تو هم بنابر دوست داشتنی که من این بنده را دوست دارم تو هم او را دوست بدار. این دستور الله به جفریل امین که فرمانده ملائکه هست و بعد از این که تو جفریل او را دوست داشتی اهل آسمان هم اعلان بکن که اهل آسمان هم با فلان بنده محبت ببرزند و بعد برو به آسمان دنیا بر روی این کره خاکی اعلان بکن که فلان بنده را الله جلال دوست داره با او محبت داره خدا او را به قرب خودش رسانده شما ای بندگان دیگر هم این بنده ام را دوست بدارید می سبحان الله این خود به خود به دلهای انسانها القا می شود چه بسا او انسان را اصلا با چشم ظاهر خودشان هم ندیده باشند ولی محبت قلبی را الله زلجرال در قلوب انسانها داخل می کنه. و انسان ها با او خود به خود محبت میورزن او را دوست میدارن چرا؟ به خاطر اینکه رب اونها با او دوستی داره محبت داره او بنده را الله دوست داره وقتی کسی را الله دوست بداره قطعا بندگان خداهم او را دوست خواهند داشت بله برادر عزیز من این چه این شخصیتی را یکی دو سه روز قبل من و شما از دست دادیم از جمع من و شما رخت بسن. و به دیار باقی شتافتن، در واقع به دیدار رب العالمین شتافتن، جان را به جان آفرین تسلیم کردن، اما بیان ببینیم این شخصیت چگونه هیچ شکل گرفت، چه رفتاری و چه کرداری از این انسان و از این بنده خدا صادر شد، و چگونه رفتار کرد، چگونه زندگی کرد، که الله جلال این چنین مقام عالی بود عطا فرمود، زندگی نامه حضرت شیخ الهدای وقتی مطالعه میکنی سبحان انسان به وجد میاد واقعا وقتی خدا یک انسانی را برداره برداشتن یعنی چی یعنی انتخابش بکنه مسیر زندگیش رو هم خود خداوند هدایت میکنه اصلا خداوند اجازه نمیده انسان از اون مسیر اصلی این طرف و آن طرف بره چرا چون خداوند نظرش نظر ای نسبت به این چنین بندگانش هست. زندگی نامه حضرت شیخ الادیس را گوش بدید چه زندگی داشته از ابتدا تقریبا یه چیزی شبیه به زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت شیخ الادیس اسم مبارکش محمد یوسف شباناله یوسف زمان ما یوسف اون زمان فرزند یعقوب بود یوسف پیانبر یوسف زمان ما فرزند سید محمد کریم اسم پدر بزرگوار اینها این بزرگواران از خاندان سادات هن سادات یعنی چی؟ سید هستن اینا و سید حسینی هستن حالا در دنیا رسم یه حکایت نغزی میکنن میگن یک سیدی از کنار روستایی رد میشه و کل اهل روستا بعدا در شناسنامه خود را سید میگذارن حالا خدا بزانه که سید واقعی که نیست میگن چون فلان سید از کنار رسلای ما رد شده بویش به ما رسیده و ما به هر حال سادات هستیم اما ایشان از سادات واقعی حسینی هستند که الله صلی ایشان را این شرف خاندان سیدی و سادات نصیب کردن درودی خط بفرمایید الله صلی اللهم سیدنا مولانا محمد و علیه و اصحابه و باری و حضرت شما تشریف آوردید بفرمایید اسکی یعنی به هر حال درودی ختم فرمایید اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد والا عالی و اصحاب پس این امتیاز است که الله جل جلال بین خاندان عطا کرده خاندان سیادت و 사다ت که از 사다ت حسینی هستن بزرگان این خاندان همیشه و حواوار دعوتگر بودند مردم را به خیر و خوبی دعوت میدادند به اصلاح و تزکیه مردم مشغول بودند و درخشانترین فرد این خاندان مرحوم حضرت صاحب هستند مولانا سید عبدواحد گشری رحمهم الله که اموی حضرت شیخ الحدیث واشه و شیوا پدر خانومشان هم هستند حضرت صاحب که معروفاً به حضرت صاحب وبانی و بانی و مؤسس مدرسه و حوزه علمیه این العلوم گشت هم حضرت صاحب هستن که حال بعدا این تفویض اختیار و مدیریت را به حضرت شیخ الهدیس واگذار می کنن. حضرت مولانا شیخ الهدیس حسین پور در سال 1309 شمسی و به قمری 1349 به دنیا آمدن در شهر گشت همین روستای گشت به دنیا می آین و این را هم بدانید حضرت شیخ الحدیث همسن مروم مرحوم حضرت مولانا خوارالدین هم هستن ایشان هم متولد 1309 شمسی و سبحان الله اینا اینها دو تا یهارو بودن و والد بزرگوار هر وقت نام حضرت مولانا یوسف را می گرفتن. از چشمه جاری میشد یه نخل قولی همیشه میکردن و من هم همیشه در هر مجلسی می گویم. والد صافی پدر پدری بزرگوار میگفت اگر در تمام این منطقه ما بگن یک عالمی است که با تقوای با تواضع فروتن و مخلص مخلص لله هست گفت من گواهی میدم او یک نفر مولانا محمد یوسف چند سال این دوتا بزرگوار با هم هم اتاقی بودند وقتی پاکستان درس می اینها با هم هم اتاق بودند و خیلی نسبت به همدیگه احترام قائل بودن یادم نمیره هر وقت مولانا محمد یوسف تشریح می آورد منزل اینجا وقتی رو در روی هم می نشستن دوزانو مثل کسی رو تحییات منشینه و با همدیگه صحبت می و گریه می کردند. از گذشتگان، از سلف، از علمای گذشته صحبت می از حالات گذشته، از احوالات امت برای همدیگه مذاکره می گریه می کردند با هم به هر حال ایشان در این سال به دنیا آمدن در قریه گشت در ابتدای نوجوانی از نعمت پدر و مادر محروم شدن یعنی پدر مادرشان از دنیا پشری بردن بولانا شیخ الهدیس نوجوانی و ابتدای عمرش را به یتیمی میگذرانه اموی بزرگوارش او را تحت سرپرستی خودش حضرت صاحب قرار میده مولانا عبدالواهد گشتی و ایشان در سایه اطوفت اموی گرامیشان بلخلی تحصیلات امتدایی را میخانه میفرمان تا کلاس چهارم درس میخانه و با تاسیس مدرسه گشت بولانا میاد در مدرسه دیلی و مشغول تحصیل برحال علوم می شود تا یک زمان خاصی که با مشورت اموی گرامی هجرت کنند به سمت پاکستان و تحصیلات آلیه را در پاکستان ادامه دهند. و از محضر علمای تراز اول شبه قاره هند که در اون زمان تازه استقلال یافته بود پاکستان این بزرگواران از علمای تراز اول شبه قاره هند کس به فیض می فرماین. از جمله اون بزرگواران شخصیتی مانند حضرت مولانا درخواستی که میگین سبحان الله نابغه زمان بوده در رابطه با مولانا درخواستی اینجا هر هر گای حضرت پدر بزرگوار همین منبر میگفت میگفت عالمی وارسته در زمان خودش مولانا درخواستی بود که قریب به صد هزار حدیث را حفظ داشته است شیخ الحدیث حافظ الحدیث بوده شبهان الله ما اگر به سختی بتوانیم ده تا حدیث را یاد میکنیم صد هزار حدیث را حافظ بوده است شبهان الله مولانا درخواستی از علمای ای بود که شیخ الحدیث از ایشان کسی به فیض کردند. مولانا یوسف بن نوری اون هم یک نابغه زمانش شده در زمان خودش مولانا مفتی محمود مولانا قدر عالم مولانا عبدالرشید نومانی مولانا اشفاق الرحمن کندی اینا علمای تراز اول بودن خیلی ها دیگر بودن اما من تعدادی را برای شما عنوان کردم به هر حال بعد از اینکه کسب فیض میکنن و مهارتی که داشتن همونجا دعوت به کار میشن که شما همینجا مشغول تدریس میشید اما عموی بزرگوار از اینجا براشان پیغام میفرسته که شما که درس را تمام کردید زود برگردید به منطقه منطقه خیلی به شما نیاز داره و مولانا اجابت می دعوت دعوت امورا و مجددن به قریه و روستای گشت بر و مولانا حضرت سای مسئولیت مدرسه را به ایشان واگذار می کنند و از زمان مسئولیت تا زمان وفات ایشان مسئولیت مدرسه بر احدهشان بود چیزی در حدود چهار سال مدیریت مدرسه گشت را بر عهده داشتند سبحان الله بیش از نیم نیم قرن میفرماید بعد از اینکه مسئولیت مدرسه بر عهدهشان قرار گرفت با تلاشی مثال زدنی و پشتکار عجیب به نشر علم و خدمت به مردم مشغول شد تا جایی که مدرسه گشت به جای رسید که شد ام المدارس و حضرت شیخ الهدی شدند استاد الاساتذه یعنی استاد سایر اساتید دیگی که امروز در مدارس دیگر مشغول تدریس و تعلیم و اینها هستند و خیلی از علمای که امروز مدرسه دارند اینها شاگردان مدرسه گشت هستند و شاگردان حضرت شیخ الهدیسان که به این مدرسه به با... عنوان ام ال مدارس یعنی مادر مدرسه ها و اساتیدی که در سراسر ایران هستند به عنوان شاگردان این استاد بزرگوار محسوب می شوند ویژگی های اخلاقی حضرت مولانا چی بود حضرت مولانا یک زندگی بسیار ساده ای داشت زندگی بسیار ساده متواضعانه و خیلی بدون تکلف و بدون از ذرخ و برق دنیای که امروز من نوعی را در بر گرفته متاسفانه حضرت استاد یک زندگی بسیار ای داشت و همین زیست ساده حضرت مولانا باعث جذابیتش برای دیگران شده بود به گواهی دوست و دشمن از حضرت مولانا وقتی تجلیل میکنند. به سادگی زیست و زندگی ایشان اعتراف میکنند به اخلاص و تواضعش اعتراف میکنند به ربانیت و عرفانیت حضرت مولانا اعتراف میکنند که مولانا عالم ربانی بود روحانی به تمام معنایی بود اینها را از زبان دوست و دشمن شماها میشنوید این تواضع و فروتنیش برای کسی که اولین بار او را ملاقات میکرد بسیار تحت تأثیر قرار میداد که به هر حال واقعات مختلفی است اما یک واقعی را برای شما بگم یکی از دوستان همین هم شهر من و شما یک بار با خود من حکایت می کرد گفت یک بار با پدر شما آمدیم گشت که بر حال زمانی که ما اونجا مدرسه اونجا داشتیم درس میخواندیم گفت آمدیم بریم سراوان گفتیم گشت بریم حدرت را سری بزنیم میگه ما آمدیم جلوی در مدرسه و مسجد که کنار هم هستن. ما شحال کردیم حضرت مالان مدرسه است یا منزل. تقریبا های قریب به نماز ظهر بود گفت نه مولانا درسش رو داده رفته سمت باق باقی داشت کنار مدرسه و اونجا هست میریم خبرش میکنیم و قاصدی رک مولانا رو خبر بده ما جلای در مد... مسجد و مدرسه ایستادیم میگفت چند دقیقه طول کشید همین کسی که با خود من روایت میکنه یکی از دوستان مؤمن من و شما هست گفت ما دیدیم یه مقدار طول کشید و من دیگه از همراهان گفتم گفتم که مولانا خیلی دیر کرد اینجا مولانا خبرو دینی ساده بالاخره کسی بره زودتر مولانا را خبر بکن اینجا سر بزرگوار نیسته دیدم همراه من گفت گفت مولانا محمد یوسف همینه که داره از جلوی روی من شما داره میاد این بنده خدا راوی میگه میگه من وقتی نگاه کردم به جمال حضرت مولانا چقدر ساده گو دیدم مولانا رفته در با مقداری علف برای گوزمندان درو کرده داخل لنگش پیچیده روی دوشش گذاشته داس هم در دستش داره به سمت منزلی بیاد شبهان الله گو من چنان متأثر شدم گفتم شبهان الله این مولانا محمد یوسف شیخ العدیسی که اسمش در کنج کنج این منطقه پیچیده و همه از او به بزرگواری یاد میکنند شبهان الله این زندگیست؟ بدونی که گاردی و همراه و محافظ و فلان و فلان همراهش باشه تن تنها یک لباس ساده به تنشه علفی گوریده برای رو دوششه داس هم در دستشی داره به سوی خانه میآید. شما را من خیلی متاثر شدم گویی خاطر هرگز از ذهن من پاک نمیشه بله این زدنگی متوازهانه حضرت شیخ الحدیث و یک نمونه اشه یک نمونه شه یک نمونه دیگرش را آقای استاددار در روزه تشهیر جنازه برای مردم بیان کرد گو من آمد گفتم برم ملاقات بکنم در خانهش گو وقتی وارد خانه شدم تا یه خانه گلی داره تیرهای منزلش به صلاح همون تیرهای چیو بیه که به بلوچی بر شما میگیم کنج. گو زندگی بسیار ساده ای داشت گو خانم هم, هم را بوده رفته منزل مولانا جای که احلیه مولانا است گو هم برگشته از زندگی ساده مولانا چه چه زیبا اینها یاد میکنن عرض کردن برادر عزیزه هم این زندگی متوازنانه مخلصانه یک بنده ای از بندگان مخلص خدا است این از زندگی حضرت مولانا جایگاه علمی ایشان سبحان الله آ یک نکته را دیگه برای شما نگفتم. مولانا در این حال که ساده زندگی میکرد و بدون مثل تکبر و با تواضع بود، اما در مقابل شریعت اسلام خیلی محقق بود. یادم نمیره آخرین سخنرانی که من از ایشان شنیدم قبل از وفاتشان. در رابطه با همین اردوهایی که میبرن بچهای مردم را چه وساده ای مسیر اتوبوس تصادف هم میکنه بچهای مردم هم کشته میشن. خصوصا در رابطه با ازام دختران مسلمان ها که اونها را بردو میبرند، میبرن مولانا سخنرانی بسیار قاطعانهی کرده بود گفته بود مردم اگر شما بی غیرت شدید محمد یوسف بی غیرت نشده گفت من اجازه نمیدم مولانا میگفت در امی صحبتش گفت من اجازه نمیدم که دختران ما که مثلا محارم ما باشن به دست محرم به اردو بره گفت زندگی ما مرگ ما برای ما بهتره این هم قاطعیت حضرت مولانا در رابطه با شریعت در رابطه با دین مولانا با کسی تعارف نداشت اما در این حال مولانا یک شخصیت ممتاز و میشهی بود جایگاه علمی ایشان که لقب شیخ و الحدیث و شیخ التفسیر تفسیر به امیدن برادر عزیز من همینطوری نیست از روی تعارف نیست از روی تملق نیست برادر عزیز من اگر به شیخ خود تفسیر گفته می شود به خاطر که سالهای سال ایشان به تفسیر قرآن مزید بعد از نماز فجر می پرداختن. اگر به اون لقب شیخ الهدیس داده می شود برادر عزیز من به خاطر این که تمام نزدیک به نیم قرن یعنی چیزی در حدود پنجاه سال ایشان کتاب صحیح بخاری را تدریس کردند. قال الله و قال الرسول بوده زبان ایشان سخن ایشان فقط قال الله و قال رسوله که به ایشان به نوع لقب شیخ و تفسیر و شیخ الحدیث داده میشه من. و عرض کردم بسیاری از علمایی که امروز در جامعه من شما از در شاگردان ایشان حالا مستقیم یا غیر مستقیم فرقی نداره واس با واسطه یا بلا واسطه شاگردان حضرت شیخ الحدیث هستم برادر عزیز من. آثار علمی ایشان چه آثاری از ایشان به یادگار مانده مهمترینش ترجمه تفسیر معارف القرآنه که معارف القرآن را حضرت مولانا مفتی محمد شفی رحمه همالله تعالی بانی دارال علوم کراچی پاکستان ایشان معرف قرآن را ایشان نوشتن اما ترجمه و تفسیرش را برای ما حضرت شیخ الهدیس انجام دادن امروز شما در کتاب ها بگردید تفسیر معرف قرآن به زبان فارسی از حضرت شیخ الهدیس از رحمه همالله و تعالی و های دیگری که حجت الله البالغه هست سیرت را شدینه و علوم القرآن انوار الباری فی شرح صحیح بخاری هم از معلفات و از یادگاران حضرت شیخ الهدیس هست برادر عزیز من وفات حضرت شیخ الهدیس را من ارز کردم که همین روز دوشنبه هیز دومم مهرما برابر با هیجده محرم که برای علاجی تشریف آورده بودن به کراچی پاکستان برای عمل قلب و هین انجام عمل جراحی قلب الله زر ایشان را به دیدار خودشان احزار کردن و دنیا فانی را ودا گفتند و جان را به جان آفرین تسلیم نموده به دیدار خداوند حی لایزال خدایی که همیشه زنده از هرگز نمی میرد به دیدار ایشان شتافتند و یک قمتی را در غم و اندوهی بسیار بزرگ و سنگین فرو بردن اینا لله و اینا الیه راجعون و خدای مطال چه امتیازی به حضرت مولانا در این وفاتشون دادن بعد از اینکه ماه عظیم رمضان را پشت سر گذاشتند روزه رمضان را به جای آوردن برای انجام مناسک حج الله جل او را دعوت داد و برای انجام مناسک حج حاضر شدند مناسک حج را انجام دادند برگشتند و پیامبر اکرمی فرماده همه ولی صلی الله علیه و وسلم کسی که حجش مقبول باشه مبرور باشه الله جل پاداشی پاداش جز بهش چیز دیگر نخواهد داد و ما بر این و گمان ما هم نیکه و سند ما به خداوند هم نیکه که الله صلی اللہ این شخصیت را بعد از که حج دیگه اجازه نداد آلودگی های دنیا او را تحت تاثیر قرار بده گو بنده من تو که حالا پاک شدی با انجام که حج بیا به دیدار خودم دیگه در دنیا نمان که دنیا برای تو خطرناکه و الله صلی اللہ او را به دیدار خودشان احضار کردن برادر عزیز من و با سعادت و نیک نامی و خوشنامی این بزرگوار این دنیا را بدا گفتن و ما را در غم و اندوهی بسیار بزرگ برادر عزیز من فرو بردن خبر وفات ایشان به سرعت برق و باد تمام جغرافیای های ایران زمین را در سبحان شبحان الله بایست میدیدن دیدن انسان ها که آمدن می من چه میگم در تشریف جنازه حضرت شیخ الحدیث چه چه شور و به پا بود؟ چو ویل البلی به بابو برادر عزیز من هر کسی توانسته بود خودش را به اونجا رسید رسانده بود حتی به تعبیری که دوستان یه چیزی را دیده بود گفت پیرمردی من دیدم که برای راه رفتن مشکل داشت که این از نظر شرعی اگر کسی ناتوان باشه نماز بخواد به خانه ایستاده نمیتونه نماز بخونه شریعت اجازه داده بهشینه نماز بخونه اگر نشسته نمیتونه باد بخوابه اجازه داره ولی همین فردی که توانایی را رفتن نداشت زیر بغلش گرفته بودن اساس زیر بغل داشت این هم خودش را به نماز جنازه رسانده بود سحنه های عجیبی از کجای کجای این ایران شما نمی, نمی ببینید برادر عزیز من که حاضر شده بودن به تعبیر یک عزیزی می گفت در آن روز ایران خلاصه شده بود در منطقه گشت و از جای جای ایران مردم خودشان را آنجا رسانده بودند. سبحان الله خوشا به سعادتش هر که آمد در جهان روزی ز دنیا میرود هر کس یا هر که آمد در جهان روزی ز دنیا میرود نیک باشد یا که بد آخر از اینجا میرود بله قطعه به یقین چه خوب باشد چه بد یک روزی بایستی بره اما حضرت شیخ الحدیث خوب بود و خوب از دنیا رفت خواب شد هر که در این خواب زیست هر که در این خاک زندگی بکنه بایستی یک روز خاک بشه بمیره ببرن تحویل خاکش بدن خاک شد هر که در این خاک زیست خاک چه که در این خاک کیست چور سرانجام همه بایستی در دل خاک رفت خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت خوشا به سعادت کسی که به دنیا پاک میاد انسان ولی شرطش اینه که پاک هم از دنیا بره دنیا و ظرف و برقش احوالات دنیا او را فریب نده برادر عزیز من خوشا آنان که با عزت زکیتی بسات خویش برچیدن و رفتند های این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند آنان که با ایمان و اخلاص حریم دوست بوسیدند و رفتند نگردیدند هرگز گرد باتل حقیقت را پسندیدند و رفتند ز تقوا جامه در بر کن که نیکان ز تقوی جامعه پوشیدن و رفتند چون نخل بارور بر تنگ دستان سمر دادند و بخشیدند و رفتند خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلخزیدند رفتن. و رفتند ز جزر رو مد این گردا به حائل نترسیدند و رفتند واقعا تشیه جنازه حضرت شیخ الحدیث نشان داد که ایشان نه نغزیدن از این آشفت بازار دنیا محبت را پسندیدن و رفتن محبت کی محبت الله را پسندیدن و الله جل جلال هم بهترین هدیه را و بهترین جایزه را هم به آنها داد واقع تشییع جنازه ایشان نشان داد دنیا مشاهده کرد هر کس که با خدا باشه الله جل جلال او را به بهترین نوع هم او را عزاد اکرام میکنه همه دیدن به چشم سرشان که سبحان الله این همه مردم را چجوری اینها دعوت کردن؟ به طبیر شیخ عزیزمان از هرمزگان شیخ محمد صالح بردل که در اون صحبت هم این عنوان داشت می گفت وقتی ما از بندر عباس که حرکت میکردیم در این دل شب در تاریکی می شد میدیم قطاری از ماشین ها حرکت کرده گفتند چه خبره گفتم اینا همه سرازیر گشت سراغانند میخوان در تشریج جنازه این که شرکت بکنن. و خود ما که صبح روز اول طلوع حرکت کردیم از اینجا رفتیم سبحان الله دیدیم از هر طرف مسلمان ها نه خاکی گذاشتن نه جاده گذاشتن نه آسفالت گذاشتن هر کسی با موتور با ماشین ماشین هر نوع ماشینی بدو بدو خودشان را دارن میرسانن به تشییع جنازه حضرت شیخ الحدیث وقت باز هم یادم آمد خاطره عبدالله الله بن مبارک را که برای شما من عرض کردم همیشه که وقتی هارون و رشید دید که مردم فوج, فوج دارن بر شهر بغداد را ترک میکنن بیرون میرون سوال کرد مردم کجا دارن میرن گفتن که ای خلیفه مردم دارن بیرون شهر بغداد میرن برای استقبال عبدالله بن مبارک که امروز میخواد وارد بغداد بشه خانمش بیویز و بده میگه تنه زد به حارون گوهارون خلیفه تو هستی یا خلیفه عبدالله بن مبارک؟ که مردم دارن خودجوش با علاقه بدون که که زور پشت سرشان باشه کسی اصله نگه داره بگه برو خلانه جا نه همه با عشق و علاقه با محبت خودشان دارن به استقبال عبدالله بن مبارک میرن و اونجا بود که بی سویده میگه حاکم توی یا حاکم عبدالله بن مبارکه هارون در جواب همسرش میگه که همسرم ما ککما ما عمران ما بر جسم مردم حکومت میکنیم عبدالله بن ممارک ها بر قلوب مردم حکومت میکنند و ما باور کردیم در تشییع جنازه حضرت شیخ الحدیث که حضرت شیخ الحدیث بر قلوب مردم حکومت میکرد بو در صاحب منظب آن و صاحب مقامانی که آرزوی چنین اجتماعی را دارند آرزو در دل دارند این تشییع جنازه یک فرد سیاسی نبود ای تشی جنازه صاحب مال و زر و سروتی نبود ای تشی جنازه یک مردی بود که برای خدا زندگی کرد تمام هم و غم هم سال زندگیش فقط به خاطر الله بود من کان الله کان الله ولا هر کس برای خدا باشه خدا هم با او همراهه خدا با حضرت شیخ الحدیث همراه بود که دنیا را جنب حرکت داد مردم را از گلستان و خراسان از هرمزگان و کردستان و کجا کجایی را تهران مردم خودشان خلوچستان خودشا که خوغا کرده بود و من به شما مردم آفرین میگویم آفرین به شما مردم واقعا ما به شما مردم افتخار میکنیم ما تا شما را داشته باشیم هیچ غمی نداریم شما نشان دادید شما مردم با خدایی هستید به پاش که برسه شما همه اختلافاتی که اگر داشته باشید کنار میگذارید برای که شما نیت خالصانه خودتان را به دنیا نشان بدید شما همه یک دستید آفرین آفرین بر مردم منطقه ما استان ما تمام ایران ما تمام کسانی که نشان دادن که برای اخونوت اسلامی اونها عرض و منزلت خواهیلن آفرین من واقعا نمیتونم از شما تشکرگزاری بکنم و این احسان شما رو اگر خدای متعال خودش جواب بده شما تمامی که در این تشییع جنازه حاضر شده بودید برادر عزیز من الله جل جلال جزای خیر به شما بده جزای خیر در هر دو جهان نه هم در دنیا هم در آخرت عوضش رو به شما بده و الله جل جلال این خلای بزرگ را این به صلاح شکافی که ایجاد شد باعث دنیا رفتن حضرت شیخ الحدیث الله جل جلال این خلا را از جانب خودش پر بگردانه یه خلف صالح و صحیح الله عزیز و برای این خلف پیدا بفرماید. و الحمدلله مجموعه کارکنان حوزه علمی گشت از پرزندان ایشان از همکاران ایشان همه مخلصه سبحان الله همه زندگی صحابوار دارن گشت که شما برید شما خودتان میبینید در یک کوه، در یک به در ری سبحان الله چه بوی اخلاص میاد به قول حضرت شیخ الاسلام میفرمودند از گوش بوی اخلاص به مشام میرسه واقعا همینطوره الله جل ایشان را در زمره نیکان در زمره یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت شیخ حدیث را مشهور بفرماید و قطعاً همینطوره ایشان اکنون در سلک صالحین صدیقین شهدا و در همراهی یاران آن حضرت الان در جوار آن حضرت قرار داره در بهشت الله عزوجل همه گذشتگان من شما، همه علمای من و شما از دنیا رفتن همه انسانهای نیک و صالح اجتماع من شما که برای جامعه مفید بودند، خداوند متعال ایشان را در بهترین نعمت‌های خودشان، جا اسکان، اس، جا و اسکان عنایت بفرماید و خاتمه همه من و شما ها را ای با نور ایمان و به ای درست و صحیح بگرداند. سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرد. قطعا همینطوره تا زمانی که مدرسه گشت هست تا زمانی که این تعلیفات و کتابهای حضرت شیخ الهدیس هستن تا زمانی که شاگردان ایشان مشغول تربیت شاگردان دیگر باشند این صدقه جاری حضرت شیخ الهدیس جاری جاری تا قیام قیامت و الله عزوجل در قبر شیخ الهدیس عجر انقامی فرماد الله حضور جلال من شما را هم از جمله کسانی بگرداند که بانی کار خیر و صدقه جاری در دنیا بگرداند آخر و دعوان الحمد لله رب العالمین